بوریز پاسترناک رومان نویس و شاعر روسی متولد سال 1890 بود که در سال 1960 به درود حیات گفت است پدرش نقاش معروف و مادرش موسیقیدان برجستهی بود و یک شنین خانواده هنرمندی فرزندی را تربیت کرد که سالها بعد برنده جایزه نوبل شد او در میان فعالیت های هنری پرورش یافت و در دانشگاه مسکو و بعد در آلمان تحصیل در رشته فلسفه را به پایان نسانید. و با شاعرانی مثل راینر ریلک، مایاکوفسکی و یسنین دوستی یافت. نخستین دیوان پاسترناک که دو پیکر در تیره ابر نام داشت در سال 1914 و دومین دیوانش به نامه بر صدها در سال 1917 منتشر شد. و این دو مجموعه پاسترناک را شاعری هنرمند و با قریهه به مردم معرفی کردند. دیوان شعر بعدی او که در سال 1923 به نام خاهرم زندگی منتشر شد، مجبه شهرت بیشتر پاسترناک شد و او را پیش برای شاعران جوان ساخت. او حتی درباره باره انقلاب روسیه شعر سرود و شعر قناعی را با جنبه انقلابی در هم آمیخت. پاسترناک، نه تنها شعر می سرود، بلکه آثار گرامبه هایی از نویسندگان بزرگ مانند شکسپیر، ریلکه، گوته و ورلن را ترجمه کرد که همه آنها از بهترین ترجمه ها به زبان روسی به شمار می آیند. در این مدت که ده سال به طول انجامید، او به دلیل انتقادهای شدید هیچ شعری نسرود تا اینکه در سال ۱۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ سکود خود را شکست و دو دیوان بدی منتشر کرد که از دوران جنگ سخن می و اولین قطار بام دادی و وسط زمین نام داشتند این دو مجموعه با نخستین دیوان های شعر او متفاوت بودند و سادگی بیشتر ابحام و پیچیدگی کمتری داشتند در این فرصت یکی از اشعار بوریز پاسترناک به نام شب شرجی تقدیم حضورتان می گردد تا با سبک او آشنا شوید. ریزبار علفها را حتی در همیان طوفان خم نکرد و از قبار جزبل ایدن دانه های باران که به براده های نجیب آهن میمانست کاری بر نیامد دهرا به هیچ آسودگی امید نبود گندوم های سیاه به سان کرکی نرم تفتید و بسوخت و همه جا در باد به تقیان سر داشت. فضای پهنور آسیم سر هم بدان حال که میقرید قرید مرتوب و خواب زده از پلک ها گریخت و گردباد هم در آن حالت که رنگ می باخد دالانی از قبار بنانه هاد. پسانگاه قطرات اریب را بلای کوری به سرآمد بر کنار پرچین میان شاخه ها و باد کشمکشی سخت برخواست قلبم به ناگهان فرو ریخت نزا بر سر من بود هیچ گاه پایانی نخواهد بود هرچند از نجوای بوته ها و پرده های پنجر پیدا بود که من بی و بی ایتنا همچنان ره خیابان باقی خواهم ماند اگر آنان مرا ببینند دیگرم راه بازگشتی نخواهد بود آنان زمانی بی پایان هم از این دست به نجوا خواهند نشست نصر بوریس پاسترناک ادامه شعر اوست یعنی با همان خصوصیت ها و تصویر های ذهنی آشنا مجموعه داستان های او در سال 1925 منتشر شد که شامل داستان کودکی لیو بود و شاهکار نصر او به شمار می آمد داستان های دیگر او عبارتند از مجموعه راه های هوایی جواز عبور و دکتر جیواغو که همین کتاب جایزه نوبل ادبی را در سال 1958 برایش به ارمغان آورد اما پاسترناک بر اثر فشار دستگاه حکومتی با نوشتن نامعی جایزه نوبل را رد کرد و توانست در میهن خود بماند و الا باید کشور را ترک میگفت و بالاخره در سال 1957 زندگی نامعی با عنوان مقالعی در سرگزشت شخصی انتشار داد که سالهای آخر زندگی او را که با درد و رنج همراه بود به تصفیر کشیده بود. در این بخش از برنامه ترانه آبی که این هفته به بوریس پاسترناک شاعر روسی می پردازد شعر دیگری از این شاعر به نام مربورگ تقدیم حضور شما عزیزان شنونده می شود از خانه پای به میدان چنهادم گویی دیگر بار پا به جهان مینادم. هر جز ناچیز و حقیر زنده بود و به آنکه به هیچ گونه دست و پاگیر من شود در برابر من قامت برمیفراشتد. چونکه گفتی با من و دا میخواست کرد. سنگ تفته بود و پیشانی هر کوچه رنگی سوخته داشت. سنگریز یه ساحلی از گوشگاه خیش به جانب آسمان نظری می و باد به مساوه کشتیوان پارو گشاده بود و این همه هیچ نبود جز جلوهی به ظاهر من چندان که در توانم بود از نگاه ایشان می و مرا به سلام و درودشان التفاتی نبود و دل نداشتم که ذره ای توانگری های ایشان را بازشناسم گریزاں خانه را وانهاده به برزن دویده بودم تا مگر از سیلابه اشک خیشم پناهی باشم بوریس فاسترناک شاعری است درونگرا و اشعارش از موسیقی کلام و دلنشینی خاص و جاذب این نامعمول برخوردر است قدرت او بیشتر در اشعار غنایی است سبک او پیچیده است و معانی در بیانی استتارآمیز جای دارد همراه با استعاره ها و کنایه های دور ازهن از اما در این حال پر از تراوته و تازگی او از پیشروان شاعران زمان خود به شمار می آمده و در ردیف شاعرانی مثل الیوت، هپکینز و ریلکه قرار دارد